چالسی پانزده. صبح بیدار شوی. ده صبح بیدار شوی. ده صبح بیدار شوی. کتاب صبح بیدار شوی. ده صبح بیدار خوب کنید، نقاطش بگیرید یادداشت داشتا بردارید اینجا به طور خلاصتر تر ردیف تر و مناسب تر نوشته شد ام نو و سالس ما و مایرد و لا قیرو نو سوم اسامی است که وارد میشه فقط مجرور در حالی که مجرور غیر مجرور نیست ما یرد و مجرورن لا قیرو و هوه اسم و چند تا دوتاست دو و هوه اسنانه یکیش مزافون الیهه و یکیش مجروره به حرف جن ال اول و اولی از مزاف و اولین اسمی که مجرور نیاد و غیر مجبور نیست مزافون الیهه مزافون الیهه چیه؟ تعریفش بود؟ میگه و هون و موزاخنه لای چیزی است که و هون ما نوث بع چیزی است که نسبت داده شده به سوی او چیز تا اینجا شامل فعل و فایل هم میشه فعل و نائب هم میشه مبتدا و خبر هم میشه صفت و مفعول هم میشه حال و ذل حال هم میشه اینا همهشون نسبت داده میشه چیزی به چیزه دیگر. اما با این قید همه خارج میشه به واسطه حرف جر مقدرن به واسطه حرف جر مقدرن اونم با یک واسطه که واسطه یا حرف جر و اون حرف جر هم مقدره به واسطه حرف جر مقدرن به واسطه حرف جری که مقدره یه حرف مقدر اون وسط هست بعد میگه مرادن و این حرف جر اراده هم ازش شده حرف جری رو که میگه مقدر این بسر گفتیم در اضافه مثل قلام و زیدن اون حرف جر چیه؟ لام است یعنی قلامون لزیدن بهش میگن چی؟ اضافه ملکی یا حرف جر من است مثل چی؟ خاتمون من فزتن. که اضافه کنیم میشه چی؟ خاتمون فزت این که بهش میگن اضافه بیان یا مثل سلات اللیل ما اول که اضافه اضافه زرفیه بود حالا یا زرف زمان یا زرف مکان سلات اللیل ما اول فل مشخص پس با این به واسطه حرف جله مقدره اون نسبت های دیگر چه شدند خارج شد اما اگر یادتون باشه مفعول فی که منسوب میشد به تقدیر فی مفعول له که منسوب میشد به تقدیر لام یادتون هست نیست ذرف تو تعدیبن. خب. اینها الان نسبت داده شده چیزی به چیز دیگه به واسطه حرف جلی مقدر شما میگه, میگه بله ولی یادتون باشه تو کتاب هدایی من گفتم گفتم ما معنا رو اینجا معنای حرف جلی میفهمیم آه. اما مراد نیست یعنی واقعا حرف جری اونجا در تقدیر نیست ما حرف جرمون وسط در تقدیر نداریم ولی در باب اضافه حرف جرم رو تقدیر میگیرن و جرم مضافون الهی رو ایشون و امثال ایشون مثل مولا جلال الدین در کتاب سیوتی جر مضافون الهی رو به چی میدونن؟ به حرف جرم واقعا حرف جر اونجا هست و مورد اراده و مورد قصد مراده ولی در باب مفعولون فیم مثل سلیت یوم یومد جماعته مفعولون مثل زربت و زیدن معنای حرف جرفی در اولی و معنای حرف جر نام در دوگمی استمباد میشه معنای حرف جر اهمیده میشه اما واقعا حرف جری اون وسط لذا با این قید مرادن اونها چی شدن؟ خارجون پس برابر این آنچه که نسبت داده شده به سوی او چیزی آه؟ به واسطه حرف جلدی که مقدره آه؟ یعنی ملفوز نیست در کلام نیست در تبدیله و این حرف جرد مقدر نه اینکه مقدر است معناش که شامل این مفعول فیه و مفعول لهم بشه ولکه یعنی چی؟ وی درو در حالی که اون حرف جر مورد غسته یعنی حرف جر رو در فزر دارن و جر مضافی لایو هم به همون حرف جر مقدر میدانن نه که معنای حرف جری وذر استفاده بشه این است خب این تعریف ما اسامی نسبت به اضافه شدن س هست نسبت به اضافه شدن چند نوعند؟ سه نوعند یک قسم از اصامی اضافه شدنشون چیه؟ موندنه محاله که اضافه بشن یک قسم. یک قسم اضافه شدنشون واجبه بهشون بیان چی؟ دائمان اضافه همیشه اضافه بشن و یک قسم قسم سه نه ممتنه و اضافه و نه اضافه بلکه چیه هم جایز اضافه میتونه اضافه شه میتونه اضافه نشه مثلا زمیر از اسامی که ممتنه و اضافه است. زمیر هیچ موقع اضافه مضافه نه میشه ها اولا مکر اولا می. اما اضافه خودش زمیر اضافه بشه خب از اون طرف کلمهی مثل کلمه وحد لبای که میشه لبای این کلمات اضافه شدنشون چیه؟ واجبه حتما اضافه شده شما وحده تنها ندارید مثلا وحدن وحدون اینطوری ندارید همیشه وحدهو وحدکه وحدی اضافه شد درسته؟ بقیه اسما مثل غلام کتاب ممکنه اضافه شد جاانی من اضافه نشده جاانی غلام زیدن اضافه شده لذا میگه و تمتنه تمتنه یعنی چی؟ محال هست ممتنه هست اضافت المزمرات اضافه شدن زمان. زمایل اضافه بشه و اسمایل اشاره اسم اشاره ها هم اضافه نمیشه و اسمایل استفهام اسم استفهام ها مثل کیفه متا اضافه نمیشه متا یعنی چه و کیفه یعنی چی؟ چگونه؟ عینه یعنی چی؟ کجا؟ اینوش گونه اضافه؟ نمیشه، اصمامیست و اصماه شرط اصماه شرط مثل خوندیم کلمون مجازات پیش میگفتن یادتون اصیه نیست؟ مثل من، یعنی چی؟ هر کسی، ما یعنی هر چیزی عینما یعنی هر کجا عینما تکونو یدرکومول موت مطا یعنی چی؟ هر وقت مهما یعنی هرچه اینا از اسامی شرط ولی موسولات موسولات که دو دسته بودن یادتونه خوندیم یکی موسولات خاصه مثل الازی الازانه الازینه الاتی آه. علتانه و علتی نه از خاص بودن حال که اونچون باره یه موصولات چی داشتیم؟ مشترکه مثل من که هم به معنی علتی میامد هم به معنای علتانه هم به معنای علتی هم به معنای علتی هم به معنای علتانه هم به معنای علتی یه لفظ به جای تا ما مثل همین بود. البته منش برای سلام نمیزه منش برای ذبل عقول به کار میرفت ماش برای غیر انسان موصولات مشترک بشون پس اسماء اشاره اسماء استفهام اسماء شرط موصولات زمان اینها اضافه بشا دیگه سوا یعنی چی؟ غیر غیر از این سوا عین فسلا سته ست غیر از ایو در این ستا کدوم ستا؟ ستای آخری موصولات اسما شرط شا... اس... و اسماء استفهام یه ایو داریم ایو استفهامیه یا ایو داریم بگی ایو شرطیه یا ایو هم داریم ایو موصوله ها اینا ایوها اضافه میشن ایوها چی میشن اضافه اسماء شرط اسماء استفهام مصدات همشون مبنی هن یا مروان مبنی اند این ایو این ایو مورب هست یادتونه گفتیم که اسم به خاطر چی مبنی میشه؟ به خاطر شباهت به حرف اونی که اسم استفهانه مثل کیفه، متا، اینجور چیزها مبنی شدنشون علتش چیه؟ چون دربر گرفتم معنای همزی استفهان شباهت معنوی داره. پس اسمای استفهام اگر مبنی هستن به چه دلیل؟ به دلیل شباهت معنوی به هم حمزه استفهام. دربر گرفتم معنای حرف. اسمای شرط به چه دلیل مبنی هستن؟ به دلیل اینکه دربر گرفتم معنای ان شرطی گند. دربر گرفتن معنای ال شرطی رافی شرط. اینا هم شباهت معنوی مرسولات چرا مبنی هستند، اینو گفتیم به دلیل شباعت افتواری به دلیل اینکه چی؟ نیاز به جمله دارنده و نیاز به جمله سر اصلی هم هست پس همه اصماع استفهام و اصماع شرط و موصولات باید چی باشن؟ مبنی باشن ایو هم؟ طبق این بایده باید چی باشه؟ مبنی باشه ولی ایو چون اضافه میشود ولی ایو چون اضافه میشه توی می این سجا هر سجا چیه؟ میگن اضافه از خصوصیات اسم است با شباحت به حرف چی کار میکنه؟ معارضه میکنه با شباحت به حرف چی میکنه؟ معارضه میکنه و ایو جنبه اسمیتش قوی می شود و میشه باز دوباره چی؟ مارد. باز میشه اسم مارد. درسته درص به حرف دارد میشه مبنی از این جهت ولی از طرف دیگه جنبه قومت اسمم داره که اضافه شدن اون باعث میشه که برگرده به چی؟ اصلش و بشه چی؟ درست اسم زمیر و اسم اشاره هم که مبنی هستند دو اضافه نمیشه حالا عیوی استفهامیه مثل چی؟ مثل به عیه زمبن قطع به عیه زمبن با ببینید عیه رو کرد؟ کرده عیه اضافه شده به زمبن با ایه رو چه کرده؟ به ایه زنبه قتلت قتلت فه زمیر نایفایلش. که میخوره به ده اون دختری که خاک شده درده شده قتلت فه زمیر نایفایلش به ایه جار مشروع متعلقه به قتلت باشن باید سببیتی یعنی کشته شد به کدامین زدن به چه به چه گناه به خاطر چه گناهی این لختر زنده خب الان اعیه اضافه شده بزن میبینید که مقدم شده اگر مقدم شده بر قتلت به یه جاره مجموع متعلق به قتلت مقدم شده به خاطر چیه چون استفهام دارای سه دارتی ایو استفامیه دیده این مورد شد اضافه هم شد ایو شرطیه مثل این ما تدعو این ما تدعو علی الاسما الاسما این ما تدعو بعد از باب تدعو یه علف چون تدعو نبوده جمع این ما تدعو فلاحول اسماء این این که اسم شرط است و دائمون اضافه است اگر از مضافن علیه خود قطع شود اگر از مضافن علیه خود قطع شود تنویم عوض از مضافن علیه در او وارد تنوین عوض از مزافنه رای در او وارد میگرد <تصفيق> یعنی اصل این آیه بوده ایه اسم ایه اسم تدعو فلاحول اسماعو اون اسم که مزافنه رای بوده چی شده؟ افتاده چی جاش اومده؟ تنوین. پس به این تنوین اَیان میگن چی؟ اوز از مضاف. خب اَیان الان چه اعرابی داره؟ منصوبه. نه؟ اَیان. مثل زیدان. مفعول تَدعوست. مفعول چیه؟ تَدعوست. خب اگه مفهوله شده چرا مفهدنم شده؟ چون اصمای شرط دارای صدارت تدعو او اون ما زایده است اون ما زایده است مفید تاکید این ما اون ما زایده است مفید تاکید تدعو فعل و واغ فایدش نبوده مجزون شده به حصف نون مجزوم شده به حصف نون کی جزمش داده؟ ایو ایو از ما شرده دیگه جزم فا بهش میگم فای جزای شرد یادتونه گفتیم جمله اسمیه اگه جزای شرد باشه چی میخواد؟ فا میخواد یه چیز دیگه هم بود که اگه جزای شرد باشه فا میخواد چی بود؟ جمله چی؟ انشارید لهو جار مجرور متعلق به عامل مقدم خبر مقدم الاسما و مبتدای محق الهسنا صفت اسما یعنی نیکوتر آه. الهسنا صفت الاسما الان شما اینجا چی دیدید؟ ایو رو دیدید که شرطیه استعمال شده و مضافر لعیش افتاده و تنمین جاش اومده و ایو معرب هم شده منصوب هم شده چون این هم ماله ایو شرطی ایو موصول دقتی ایوی موصوله چهار حالت دارد خوب این که دارم میگم یاد میگید نه که دارم میگم کلیدی این مطالبه؟ ایوی موصوله چند حالت دارد؟ چهار حالت دارد. یک ایو اضافه شده باشد و صدر سله او هم و صدر سله او هم که زمیریست مذکور باشد مذکور باشد ماننده اکرم اکرم ایه ایه هم اعرابار درست میسه دوی که بگیم اکرم فعل و فاعل ایه هم مفعول ببینیم منصوب شده اکرم ایه هم هوه کریمون سله ایه هوه کریمونه درسته؟ مبتداخ خبر. صدر سلش کدومه؟ اول سلش پوهی زمیره؟ آید الان هم اضافه شده هم صدر چیه؟ مزکور است. صدر سلش مذکوره لذا شده چی؟ معرب معرب است و اینجا منصوب و مفروب. معرب این صورت این صورت اول صورت دوم از اضافه قطع گردد از اضافه قطع گردد و تنوین جای آن آید تنوین بیاد جایش مثل همون صورت استفران. و صدر سله هم حضف شده باشه صدر صداش چیه؟ حضف برخلاف صورت اول یعنی چی؟ یعنی نه مزاخنه لگش هست نه صدر مثل چی؟ اکرم این و بلند می نسید روش تن کریمون کری در این صورت چی چیه باز؟ مغربه که من صور ها صورت سفم این از اضافه قطع گردن مثل صورت دوم از اضافه قطع شد تنبینم عوض میده ولی صدر سله آن صدر سله آن مذکور است سرده سرشتیه است. مثل اکرم ایان هوه کریم اکرم عین هو کریمون این, کریم این هم باز معرب هست و بگی منصوب معرب هستو سورت چهارم سورت چهارم میتونه باشه؟ دو حت بزنیم چهارم ایو اضافه شده باشد صدر سلش محزوف باشد ایو اضافه شده باشد صدر سلش بگیر محزوف باشد مثل اکرم ایوهم با زمه ایوهم کریمون ایوهم کریمون در این صورت ایو در این صورت ایو منصوره بگید مبنیه بر زمه در این یک صورت مبنیه بر زم هست فس این گفته ایو در ستا بله ایو در استفهان موربه, موربه هست ست در در شرط هم اما در موصولات موربه است. هفت درصد ستاش یک درصدش چیه؟ من نیست. مثل این آیه نگاه کنید سوم. لنن زعن منصوب به نزل خافز می نمشتید نزل یعنی کندن نن زعن سم لنن زعن با این سم لنن زعن زمین نحنو فایل نشه لنن زعن هم بلا منون درگیت نشون بده جواب قسن سم لنن زعن من کل شیعتن من کل شیعتن ایوهم ایوهم اشد دوت علالرحمنه ایتیین ایتیین با ای همی سر اشد حالا نگاه کنید الان لنن زمین ضمیر شد بشه نحن مستد وجود من کل شیاتن متعلقه به لنن زنه مفعول لنن زنه کو ایهم بچرا مبنی میگن چون اضافه شده صدر سلسلهش پس شده صدر سلسله چی بوده اشد تو میگه به خدا قسم میکنی از هر طایفه ای برمی گیریم از هر طایفه ای من كل نشیعهن ایهم اشدوا علی الرحمانه انتیاء هر کدامشان ایهم الّذین هر کدامشان هر کسی رو می گیریم میکنیم از لابلای مردم در روز قیامت از هر طایفه ای هر کسی رو که اشدوا علی الرحمانه انتیاء شدیدتر است تر بوده است در این دنیا نسبت به خداوند ونده تعالی سرکشیش هر کسی در بوده سودتر بیخور کنمشه ایو مفعول لنن زن هست و شده چی؟ مبنی بر زن و محلن چه گفتیم؟ گفتیم اسماع زمیر اسماع شاره اسماع شرد اسماعه استفهان و موصولات از پسامیمی هستند که اضافه نمیشند. غلط است، اضافه شد مگر در بین این ستای آخری ایو, ایو دائم اضافه است و به خاطر همین مورب شده و ایو شرطی و استفهانی یه درصد مورب است. اما ایو موصوله چهار صورت دارد در یک صورت مبنیست و در سه صورت کل مطلب که بفتیم به جهاز گوش سوا این فسلا ستی شو؟ و بعض از الاسما یجب و اضافته از یعنی پاره از اسما چاره از اصما واجبه که اضافه بشن اینا بشون بگن چی؟ واجب و اضافه. دائمل حالا اینایی که باید اضافه بشن چند جوره؟ دیگاه کنیم اصمایی که باید اضافه شوند چند نوعن یک اما جمل یک قسمشون هستن فقط به چی اضافه میشن؟ بگی جمل جمله اضافه باشه مثل چی؟ و, و از مثل از ظرف زمان مازی ظرف زمان چی؟ وز کرو از انتم قلیلون وز کرو از انتم قلیلون واظکرو از کونتم قلیلن وظکرو از کونتم قلیلن در اولی به چی داخل شده جمله اسمیه انتوم بالیلون در دومی جمله فعلیه چی بود کونتم قلیل وظکرو فعل و فاعله از مفعول به و معلن چیه؟ منصوبه اس مبنیه چرا مبنیه؟ چون شباهت وضعی دارد به حرف شباهت وضعی کدوم بود؟ یک حرفی یا دو حرفی وضع شده کجایی؟ از البته در این از غیر از شباحت وزگی شباحت دیگری هم هست شباحت افتقاری چون اینا مزاقنه ایشون صد در صد باید چی باشه؟ چون باشه گفتیم این ظرف چیه؟ مکانه ظرف مکان این هم باز اضافه میشه به جمله فعلی یا جمله اسمیه وجلس اجلس یعنی چی بشین اجلس هیسو جلس زیدون یا هیسو زیدون جالس بعد اون جمله جلس زیدون یا زیدون جالسون میشه چی محلن مجرور مضاف همونطور که تو جمله اول انتون قدیلان یا کنتم قدیلن میشه معلن مجرور مضافون حیزون و اعضا اعضا شرطیه است عدات شرط غیر جازم یعنی جزم هم بگید نمید اضافه می شود به فعل شرطش اضافه میشه به چی فعل شرطش و منصوب است به چی جزای شرطش منصوب است بنابر ظرفیت و مفعول فی بودن مفعول فی زمان به جزای شرطش مثل چی ازا جا نصر الله و رعیتن نازیت خلون افیدین اللهم با جا فساد فسبه جزای شرط جا هم فعل شرط فسبه جزای شرط چون جمله انشایی هم بوده فعل هم بوده چی اومده سرش؟ الان ازا زرف است متعلق است به کی به سبه این سبه نسبی حالا چرا موختم شده چون شرط دارای صدا دارد. خود ازا چه کار کرده اضافه شده به جمله شرطش جمله شرطش کدوم جا نصر الله الان جمله جا نصر الله رو میگن جمله شرط محلن مجرور مضاف الیه پس ایزا شو چی اضافه می شون به فعل شرد منصوب است به جزای شرد حالا منصوب جزای شرد بنابر چی برابر مفعول فیه چون پس برای ما دو جور مثال زد یکی ازو هیزو ها ازو ایسو که اینها قدرت داشتن هم به جمله بگید اسمیه اضافه شن هم به جمله یه دونم هم ازا مثال زد. که اضافه در صد به جمله فعلی اضافه میشه چون فعل شرط ما داریم هیچ موقع جمله اسمیه شرط واقعه نیست پس اضافه فقط و فقط به چی اضافه میشه به سوی جمله فعلی پس دیدیم که یکی از اقسام اسمی که اضافه میشد اسمی بود که به جمله اضافه شد و اونی که به جمله اضافه میشه خودش به دو دست تقسیم میشه یکی اون که به هر دو نوع جمله اضافه میشه و یکی اون که فقط به یک نوع اضافه میشه مثل اضافه که فقط به فیلی اضافه میشه او الا قسم دوبم قسم دوبم از اسمای واجب اضافه او الا مفرد مفرد ایجا منزول چیه در مقابل جمله. یعنی یک قسم از اسما هستن که به مفرد اضافه میشه به مفرد اضافه میشه یعنی چی میگه مضافونه لایش نمیشه جمله باشه خب مضافونه اش نمیتونه جمله باشه مفردات زیادن میگه حالا به مفرد اضافه میشه ظاهران او مزمرا فرقی با حالش نمیکنه اون مفرد زمیر باشه بهش اضافه میشه اسم ظاهرا باشه باز بهش اضافه میشه مثل چی؟ وخوه کلا و کلتا یادتون نیست کلا و کلتا هم میتونستن به زنیر اضافه شن هم میتونستن به اسم ظاهر اما کلا و کلتای بدون اضافه ما نداشت واجب ال اضافه هست حالا امائلن اسم ظاهر عوض زنیر حالا یا به اسم ظاهر اضافه شه یا به زنیر که یادتون باشه گفتیم اگر به اسم ظاهر اضافه شد احرابش میشه طالب دیری و اگر به ضمیر اضافه شود اعرابش میشه چی چی؟ ملحقه استیه. ها؟ اعراب دستوری میشه. یعنی به ضمیر میشونه. دیگری چیه؟ کلمه اند، اند یعنی چی؟ نزد ها؟ میگیم ان یعنی نزد خدا. ها؟ اندارا بهمی یرزقون اما میتونیم هم بگیم اندی آه. اندی در همون اضافه شده به چیه اند هم به زمین اضافه شده. اما اند خالی ما همیشه اضافه شده. لدا لدا هم مثل اند ظرف است. یعنی نه اند و لدا ظرف میتونیم بگیم لدا زیدن میتونیم هم بگیم چی؟ لده اینا و آته اینا بود من لدونا یا لده اینا درست شد؟ بالای لده هم میتونید بنویسید چون مرادف لده هست لده هم مثل همین لده هست سوا کلمه چی؟ سوا کلمه سوا؟ تونه خونه مثل کلمه چیه؟ غیر. همین الان خوندیم سوا. همیشه اضافه میشه ولی میتونه به اسم اضافه اضافش میتونه به زمیره. سوا یا یعنی غیری. سوا که یعنی غیر که. سوا زایدن یعنی غیر زیدن. هم میتونه به زمیره اضافش هم به اسم زمیر. یه قسمی از اون هایی که مفرد اضافه میشن فقط به اسم ظاهر اضافه میشن به زمیر اضافه نموشه غلط اصلا به زمیر نموشه او فقط مثل چی؟ و, و الو اولو جمع معنوی زوست اولو جمع معنوی چیه؟ و الو کجا خوندیم؟ چیه؟ ملحق به جمله، به معنای صاحبان الول انبام اولو فقط به اسم ظاهر اضافه میشه زو، هم به چی اضافه میشه فقط؟ اسم ظاهری هایتونه زوماله و اگر به زمین اضافه شده دن شعری احنا المعروف ما یبتزر فیه وجود اه اینما یعرف و ظرف ازل من اناس زبود که تو کتاب ادای خوندی گفتی چیه؟ شازه اینه قابل قیاس زو. و فرو اینها و فرو اهما فرو اینها یعنی اونچه که از زو مشتبه میشه مثلا زو تصمیهش میشه چی؟ زوه جمعش میشه چی؟ زوه یادتونه زوه رو شاید زوه میگه هرچی هم از اینها بیاد باز به اسم زاهه اضافه میشه زمین اضافه اینم یک قسم از اسامی یه قسم دیگری هستند از اسامی که فقط و فقط به چی اضافه میشه؟ زمین او مرانز فقط مثل چی وحدت وحده هو که گفتم وحده هو میشه چی حال مثل جا ازیدون وحده هو یعنی چی یعنی منفردان واحدان تو بحث حالی که توی ادایی گفتم وحده وحدم چه اضافه میشه حالا وحدهو، وحده هو وحدی به هر سن اضافه میشه به چی؟ هر سنو زمیر یعنی چه هر سنو زمیر؟ زمیر قایب باشه وقت بود زمیر مخاطب باشه وحدکر میگم جئت وحدکر یعنی اومدی تو تنها جئت وحدی آمدم من تنها اضافه شده به چی؟ زمیر درس زمیر زمیر و یکم لبیک و اخواتی یادتونه لبیک، سعدیک همین دو همین کتاب بود چند کلمه دیگرم هست هنانیک، عزازیک، عجاجیک نیست خب لبیک و سعدیک که مثل این هستن اینها به چی اضافه شدن؟ به زمین لبیک گفتیم چی بوده؟ اولب بولکه البابین بعد اولب رو هست گردیم البابین رو جاشت کذاشتیم شد البابین لک. بعد الوابن رو مستر مرخم کردیم شد چی؟ لبه اضافه کردیم شد چی؟ لبه ایک. و گفتیم اصلی هم اینجا دلالت بر تکثیر میگونه کسرت خب لبه ایک و سعده ایک از اسامی هستن که فقط به زمیر اضافه میشن و زمیرش هم زمیر مخاطبه ما لبیک لب داریم دیگه لبیه لب نداریم لبیه لب دیگه بگید نداریم مگر شاسن قیاسن این ها فقط به چی اضافه میشن به زمیره و اقلاتش تکمیل بحث اضافه رو می تکمیل الان نگاه بود مضاف اگر اضافه شد دیگه تنوین لازم نداره میگه یجب تجرب و دل مضاف انه؟ مضافه انه تنوین میگه مجرد شدن مضاف از تنوین چیه واجب یجب تجرب و دل مضاف واجب است مجرد بشه لخت بشه مضاف از تنوین و دیگه چی؟ و جانشین تنمین جانشین تنمین چیه؟ ما یقوم و مقامن رو گفتیم نون تصنیه و و نون موسنا و جمع و ملحقاته ما و نون ملحقات اینها مثلا اسنان ملحقه به چی بود؟ تصنیه بود درسته؟ اسنان ملحقه به بود حالا اگر میخوایم بگیم دو تای شما اضافه میکنیم میگیم چی اسنا کنون چی شد نه شده نه نون ملحق به تسنیه هم میشه مثلا اشرون چی بود ملحق به جمع حالا می‌خوایم بگیم 20 شما می‌گیم چی اشروک می‌گیم نون چی شد حذف پس مضاف باید مجرد از تنبیم و مجرد از نون تصمیه و نون جمع و نون ملحقه به تصمیه و نون ملحقه به جمع باشه درست شد فعن کاند حالا اضافه لفسیه و اضافه من که میدان نگاه کنیم فعن کاند اضافت و صفت حالا اگه اضافه ما اضافه چی باشه صفت باشه منظور از صفت چی مشتق یعنی اسم فائل اسم مفعول صفت مشتق فعن کانت اضافت صفت الی معمول معمول میگه چون ممکنه که اسم فائل اضافه شه به مفعولش ممکنه اسمو مفعول از شه به فایلش آه. ممکنه که اسمو فایل اضافه شه به چی؟ مفعولش مثلا انا زاربون زیدن انا زاربون زیدن الان او اوقتن انا زاربون شرایطش رو داشته چکای کرده؟ عمل کرد تکه کرده به محتده به مناحال استقبال عمل کرد انظار بون زیدن الانه و قدم یا مثل این زیدن مزروبون قلامهو الانه و قدم مزروبون قلامهو الانه و قدم مزروبون تکه کرده به محتدا به مناب استقبال عمل کرده غلامه بودو به عنوان نایفاید بردش درسته؟ و امکان هم دارد که همینجا اضافه چی کنیم نفذیه کنیم و تنوین چی بشه هست بشه. تخفیف تخفیفه ده میگه و امکانت زمین داخل کانت میخونه به اضافه اگر اضافه ما باشد اضافت ها اضافه یک صفت الا معمول ها به معمول و صفت اضافه صفت, اضافه صفت به معمولش باشه فلفزیتون این اضافه روش میکن چیه؟ اضافه لفزی یعنی فهیه لفزی این اضافه اضافه است. لفزی اضافه لفزیه فایدهش چیه؟ ولا توفید الا پخفیف ها. فقط پخفیف میده حالا تخفیفش به چی حاصل میشه؟ به حصف تنوین زاربان اضافه میشه به زید تنوینش میشه. حالا اگه زاربانه باشه اضافه میشه چی میشه؟ نونش میفته زاربانه باشه باز نونش میشه. به اضافه تنوین. و الا و الا یعنی چی؟ و اگر اضافه صفت نبود به معمولش و است والا فمعنویاتون یعنی ف اضافه او معنوی میشه اضافه معنوی یعنی مفید معنا است اضافه معنوی چه فایده چیه و توفید و تعریفا معل معرفته و افاده میدهند فایده میدهند معرفه شدن رو یعنی معرفه شدن مضاف رو منع معرفته با مضافه ندعیه یعنی اگر مضاف ما اضافه شد به یک اسم معرفه کسب چه میکنه تعریف میکنه کسبه تعریف میکنه مثل قلام و زیدن که قلام اضافه شده به زید و کسبه تعریف قبلش مچهول بوده قلامون معلوم نمون قلامی که و تخصیصاً من نگه حقسیس میاره با نکره مثل چی؟ غلام و رجلن اصلش غلام بوده غلام زن، مرد، بچه، همه بیترمال، همه چی شامل بوده. حالا که میگیم غلام و رجلن دائرش میشه چی؟ محدودتر اضافه به نکره مفیده چی شد؟ درست شد؟ خب حالا نگاه بکنی. اون جایی که گفتیم اضافه میشه به معرفه و کس تعریف میکنه شرطش اینه که مضاف, مضاف قابلیت تعریف داشته باشه شرطش اینه که مضاف قابلیت تعریف داشته باشه چون بعضی از اسما رو بهشون میگن اسمهای متوقدله در ابحام متوقعه با غیر از رفته اسمهای متوقعه در ببشوند باز نکره میشه، باز نکره از معنیشون مثل کلمه مثل کلمه مثل کلمه غیر الان نگاه کنی مثل اگر اضافه بشه به چی؟ به مثلا زمیر که عرف معارفه معناش مبهمتره مثلا بگم مثلو که جاعه شما میفهمید مثلو که کیه؟ شما اگه یه نفر باشید ما باقی چند 5 میلیارد نفر یک نفر استثناء شده ممکنه بقیه 5 میلیارد نفر همه چی باشن معلومه اسکی غیر او کجا هم. غیر از شما اومد غیر شما ممکنه بدون سؤال غیر او کجا چون اینا رو میگن اسماء متوکله ی در ابراهیم یعنی فرو رفتن در اپنامت همین مثل و غیرو اگه به نکر اضافه کنید معناش بهتره. الان اگه من بگم مثل و رجولن جاه باز معناش این رو غیر و رجولن جاه غیر و رجولن چیه؟ زنه اما اگه بگم غیروگه جاه غیر جا. غیروگه جا هم شامل زن میشه هم شامله خیلی بیش اینه که شرط این که مضاف از مضاف و نلعی به تعریف کنه اینه که چی؟ مضاف قابلیت معرف شدن آه. مثل کلمه مثل، غیر، شب، این دو چیزها نباشه که اینا میگن بگن اسمای متوقعه در اوها بذارید باشه کم درمی بزارید